مکر دیگر وزیر در ازلال قوم، مکر دیگر آن وزیر از خود ببست، و از را بگذاشت در خلوت نشست. در مریدان درفکند از شوق سوز، بود در خلوت چهل پنجاه روز، خلق دیوانه شدند از شوق او. از فراق حال و قال و ذوق او، لابه و زاری همی کردند او، از ریاضت گشته در خلوت تو. گفته ایشان نیست ما را بی تو نور، بی اساکش چون بود احوال کور، از سر اکرام و از بهر خدا، بیش از این ما را مدار از خود جدا، ما چو تفلانیم و ما را دای تو، بر سر ما گستران آن سایت تو گفت جانم از محبان دور نیست لیک بیرون آمدن دستور نیست آن امیران در شفاعت آمدند وان مریدان در شناعت آمدند کی چه بدبختی است ما را ای کریم از دلالدین مانده ما بی تو یتیم تو بهانه میکنی یماز درد میزنی سوز دل دمهای سرد ما به گفتار خوشت خو کرده ایم ماز شیر حکمت تو خورده ایم الله الله این جفا با ما مکن خیر کن امروز را فردا مکن میدهد دل مر تو را کین بی دلان بی تو گردن داخل از بی جمله در خشکی چماهی میتپند آب را بکشاوز جو بردار بند ای که چون تو در زمان نیست کس الله الله خلق را فریاد راست